بسم الله الرحمن الرحیم بحث کلام فاقسام الكلامی فاما اقسام الكلامی اما اقسام کلام فاقل اقسام کلامو از اعتبارهای مختلف بررسی میکنن در این درس فاقل ما یترکب منه الكلام اسمان کمترین چیزی که ترکیب میشه از اون کلام اسمان یا دو اسم هستن مانند زیدون قائمون او اسمون و فعالون یا یک اسم و یک فعل مانند جا از زیدون او فعلون و حرف مانند ما قام لمیقم او اسم و حرف مانند یا الله اینا میگه کمترین ترکیباتی هستن که یک جمله مفید که البته کلام و تعریف نکرد که مهم هم نمیداند کلام ازش تشکیل میشه کمترین چیزی که کلام ازش ترکیب میشه یا دو اسمن یا اسم و فعل یا فعل و حرف یا اسم و حرف البته در این دو مورد آخر فعل و حرف مانند مقامه یا اسم و حرف یا الله روش بحث وجود داره و تقسیم بندی در این رابطه نحوی ها دارن دقیق تر هست ظاهرن چونین می نماید که به اعتبار ظاهر حساب کرده مقامه استاد زمیری درش هست ولی از اون جایی که دیده نمیشه اونو حساب نکرده مقام فعل و حرف حساب شده اسم و حرف یا الله این یا قائم مقام جاگزین فعل هست ولی باز هم خود یا رو حساب کرده که حرف هست از این زاویه وگر نه تقسیم بندی که خود نحوی ها دارند دقیق تر هست خلاصه کلام این آن چیزی بود که معلف رحمه الله آورده بود و بعضی دیگر از اصولیون از زاویه دیگر تقسیم بندیش میکنه کلامو به اعتبار مدلول والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. كلام تقسمه اعتبار مدلول. بأمر ما نندي أقيم الصلاة والنهي ما لا تقرب الفواحش وخبر ما جاء الحق وزهق الباطل واستخبار يا استخبار يعني استفهام ما هل درسته؟ حال ذهبت وينقسم ايضا الى تمنن وارض وقسم تقسیم میشه همچنين به تمنا تمنا آرزوی دست نیافته و يا حال و مشكل رو ميگن مانند يا ليت شباب يعود يوما کاش دونه روزي بر بگردد خب اين مستحيله يا آرزویی که به دست آردنش محال نباشه ولی واقعا مشکل باشه تمنا کردن و عرض, عرض هم درخواست با مهربانی و آرامیست مانند علا تنزل و اندنه نزده ما پیاده نمی شوی علا تزورو نه. آیا ما رو زیارت نمی کنی خیلی مهربانانه که آرامانه و قسم و قسم که معلوم هست واللهی لأفعلن لا فلان خب این تقسیم بندی هست که از زاویه مدلول کرده البته تقسیم بندی نحوی ها و بلاغی ها جالب تر ابتدا میان کلام و از این زاویه مدلولش به خبر و انشا تقسیم میکنند که خبر اونی هست که میشه گوینده رو به صدق و توصیف کرد و انشا برعکسش بعدا انشا خودش تخصیماتی داره امر نه استفام تمنی عرض قسم اله آخر پس این اقسام کلام بود از زاویه مدلولش و از زاویه این که لفظ به اون معنای که ابتدا براش وضع شده به اون معنای که کلمه براش وضع شده به کار رفته یا نه تقسیم بندی دیگه‌ای داره از این جهت که کلام برای اون معنایی که براش وضع شده به کار رفته یا به معنای دیگر به معنایی که براش وضع نشده باز هم تقسیم بندی داره و من آخرین اخری و الی حقیقت و مجاز و از اعتباری دیگر از زاویه دیگر کلام تقسیم میشه به حقیقت و مجاز فال ما بقیه فل استعمال على موضوعه حقیقت می‌گانی هست که یا لفظی هست که باقی مانده است در استعمال بر همان معنای که وضع شده و قیل مستعمل فی مستله عليه میل المخاطبه و لفظی که استعمال شده در معنای که استلاح شده بر آن درست شده بر آن از مخاطبه به اون معنای که شما خطاب کردید به اون لفظ الو معنای ساده تری رو ذکر می اصولی ها اللفظ المستعمل فی وضع له لفظی که استعمال شده آن معنای که براش وضع شده و البجاز ما تجوز عن موضوعه و مجاز لفظی است که تجاوز کرده از اون موضوعی که براش وضع شده از اون معنایی که براش وضع شده تعدی کرده به معنای دیگهی به کار رفته پس مجازو حقیقتو تعریف کرد الان انواع حقیقتو میگه بعدش انواع مجاز رو و اما لغویتون حقیقت یا لغوی هست یعنی در لغت برای اون معنابست شده مانند سیام که به معنی نگه داشتن هست به معنی خیلون سیامون و خیلی غیر صائمه. سائمه هایی که بسته شدن نگه داشته شدن خب این سیام معنی حقیقت لغوی به معنی حقیقت, حقیقت لغوی کلمه به کار رفته بود اما و اما شرعیه یا حقیقت شرعی مانند کلمه صلات موقع که فقه ها به کارش میبرند به معنی حقیقت شرعیش به کار میبرند حقیقت شرعی صلات چیزی دیگه است با حقیقت لغویش که دعا هست حقیقت شرعی سلط است با افعال و اقوالی که با تکبیر شروع میشه و با سلام پایان میابد و اما عرفیه یا حقیقت عرفی کلمهی که به معنای عرفی کار رفته که خود این عرفیه عام هست یا خاص مانند مثلا کلمه جسم کلمه جسم در نز نحوی ها اعراب خاصی هست اعراب خاصی هست ولی در لغت در معنای حقیقت لغویش معنای دیگری دارد این شد از حقیقت و مجاز و مجاز اما ان یاکونہ بی مجاز یا با زیادت هست او نقصان یا نقصان او نقل یا نقل او استعاره یا استعاره فالمجاز بزیادت مثل قوله تعالی لیس کمثله شیء مجاز بزیادت زیادت ماننده این آیه کریمه لیس کمثله شیء نیست مانند او چیزی خب اینجا کاف هم داریم مثل هم داریم به معنای همان اگر این کافو اضافه ایساب نکنی معنی اینجوری در میاد نیست مانند مانندش چیزی یعنی مانند خودش چیزی هست مانند مانندش چیزی نیست که معنای خطرناکی است لذا میگن این کاف اینجا زیادت هست و مجاز هست والمجاز المجاز به نقصان مثل قولیه تعالی مجاز به نقصان ماننده این آیه کریمه واسعل القریه نقصان هست در اساس واسعل اهل القریه که ناقص هست والمجاز بالنقل النقل کالغایتی فيما يخرج من الانسان و مجازب النقل مانند غایت اون چیزی که از انسان خارج میشه در اصل غایت اسم همون مکانی هست که برای غایت میرند ولی نقل شده به این والمجاز المجازب الاستعارتی که قول تعالی مجازب استعاره مانند این آیه کریمه جدارا یریدو ان ینقض دیباری که میخواست و خب دیوار اراده نداره لذا این خاصا استعاره شده آریه گرفته شده برای این و استعاره هست اینها از انواع مجاز به کلمه بودن مجازه به اثنات که همون مجازه عقلی هم هست وجود داره پس مجازه به مجاز رو آورده بود مجاز به زیادت نقصان نقل و استعاره چیز خاص دیگه ای در این رابطه وجود ندارد فقط یه نقطه ای رو باید اشاره کنم که در رابطه با مجاز که آیا در قرآن وجود دارد یا ندارد اختلافی وجود دارد گروهی میگن اصلا مجازی وجود ندارد. گروه میگن در قرآن فقط وجود ندارد و گروهی میگوند که مجاز از اسلوب ادبیات عرب و بلکه دیگر زبان هست و در قرآن و در غیر قرآن وجود دارد و حقیقت این است که مجاز وجود دارد چون مجاز از اسلوب ادبیات عرب هست و قرآن به زبان ادبیات عرب وارد شده است. حالا این که ما خاطر صد زریعه بیایم جلوی سوء استفاده هایی از این طریق از طریق مجازو بگیریم نمیشه یک حقیقت ادبی رو انکار کرد تا اینجای کار اکتفا کنیم درس بعدی انشالله جلسه بعدی موفق و پیروز باشید